قوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خوشنودی روح متحر حضرت امیر المومنین و فرزندان بزرگوار ایشون امام حسن امام حسین و ائمه بزرگوارمون یک سلاوات سیک بفهمه امام حسن امام حسن امام حسن امام یکی از امور بسیار مهم در زندگی ما چه باید اون رو رعایت کنیم و خیلی انسان رو در مسائل اخلاقی بالا میبره ارتباط با خداوند، مناجات با خداوند، ذکر خداوند، بیاد خداوند بودن در لحظات زندگی هست خب البته ما به گونه خودمون رو ساختیم که لحظه لحظه زندگیمون نمیتونیم با خدا مناجات داشته باشیم و ذکر خدا رو داشته باشیم اون افرادی که کل زندگیشون یا به عبارت دقیق‌تر کل وجودشون ارتباط با خدا بود اونها از علات معصومین علیهم السلام هستند ما در حدی که میتونیم به طوری که دیگه نشه روزها بگذره و ما با خدا مناجاتی نداشته ایم غیر از همین نماز واجبه این مناجات و به یاد خدا بودن امریست که حضرات معصومین بعضا اینها رو یه گوشه هایش نشون دادن خطبه های حضرت امیر علیه السلام رو اگر ببینید در ابتدای خطبه ها بعضا در میان خطبه ها یا کلمات دیگر حضرات و همچنین در سایر کلمات صحیفه سجادیه رو ببینید دعاها رو ببینید احادیثی رو ببینید که حضرات بعضا توش به ذکر خداوند مشغول شدن در ضمن همون حدیث اینها به ما یاد میده که ما هم باید در این زمینه حتما مشغول باشیم و به خداوند مرتبط بشیم خودمون رو مرتبط کنیم بحث اخلاق در نحجل بلاغه رو یه خورده با دید باستر هم میشه نگاه کرد اخلاق فقط این نیست که من از جهت رفتاری چه کنم از جهت اخلاقی چه کنم یکیش هم اینه با خداوند مرتبط باش. این جسم این بدن ماده لازم هست به معنا هم مرتبط باشه با خالق خودش مرتبط باشه دنیا رو با عالم معنا باید مرتبط کنیم خودمون رو با خالق خودمون مرتبط کنیم بسیار آثار پربرکت و زیادی خواهد داشت انشاءالله در قرآن هم این اشاره شده خداوند دستور فرموده. یا ایوهاللزین آمنون. ای گفتید کدوم آیه را امدد نظر هست؟ اذکر الله. بعد میگه که ذکرن کسیر یعنی فراوان. ما باید ذکر کسیر داشته باشیم انشاءالله. حتی دستور العمل اصاتید اخلاق اینه که ما از مرحله واجبات و محرمات که خودمون را عبور دادیم وقتی شما انشالله تو همین سفر از کارهای ناشایست خودمون توبه کردیم گفتیم خدایا دیگه گناه انشالله دیگه تحتیل گناه دیگه توبه کردیم هیچ گناهی از ما سر نخواهد زد ما بنده تو هستیم خدایا در محضر حضرت امیر تصمیم جدی بر بندگی می گیریم واجبات رو به نحو احسن انجام میدیم بعد این مسیر بعد از یه مدت که شد. دیگه ما میریم سراغ این که خدایا من میخوام همیشه با تو مرتبط باشم با تو در مناجات باشم با تو در ارتباط معنوی باشم این مسیر ذکت کسیر بعد از این مرحله عملی انسان رو به مراتب بالا و مرحله های بعدی تکامل میرسونه خیلی ها در همون مرحله اول ماندند یعنی فقط در حد انجام واجب و ترک محرمات هست البته خود این عالی است یعنی ماها معلوم نیست از جهنم بتونیم خودمون رو برهانیم اگر واجب و حرام را بتونیم رعایت کنیم جهنم رو ازش رهانیدیم خودمون رو ولی خیلی ها میگن این کافی نیست خود خدا هم میگه این کافی نیست یا ایوهاللزین آمنو اذکر الله ذکرن کسی را که برید به قرب خدا برسید به نزدیکی خدا برسید. حالا افرادی که وجودشون ذکر خداست، وجودشون قرب خداست، حضرات معصومین علیه مسلم اینها برای ما نشون دادن چطور با خدا مناجات کنیم. بزرگترینشون حضرت امیر المومنین علیه السلام که در محضر این بزرگوار هستیم در خطبه اول ببینید چه زیبا مناجات میکنه. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله حمد خدا خدا دوست داره بندش او رو حمد کنه پس یاد بگیریم حتی شده لسانی قضا و خوردی بدون حمد خدا پا نشد و الحمدلله چمچم به مرحله قلب هم میدست انشاءالله الحمدلله لذی بزرد یه خود مطرش رو هستم بخونم بعد ترجمه بخشایش رو ارزمه کنم خدمت رو. خود الفاظش انسان رو تأثیر میذاره چون الفاظ از شخص عادی صادر نشده الفاظ از یک انسان وصل به خدا صادر شده نفس اون انسان هنوز در این الفاظ هست الحمد لله الذي لا يبلغ قائلون و ولا يحصي نعماه العاتون من حد سمیه چه حضرت موقع بیان این کلمات موقع این مناجات ها داره لذت میبره خدا معشوق اوست همانطور که خدا عاشق اوست عاشق و معشوق هم وقتی همدیگر رو ذکر میکنن لذت میبرن حضرت امیر اینا رو میگه داره لذت میبره ماها بیبریم از این لذت ها فکر کردن لذت همین خوردن و مسائل دیگه الحمد الحمدلله الذي لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصي نعما اهل ولا يؤدی حقه المجتهدون الذي لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق به قدرته و نشر الریاح به رحمته و وقت سخور میدان ارزه حمد به معنای ستودن و ستایش کردن است اگر بعد از نعمت زک شد یا بعدش نعمت زک شد همراه با نعمت زک شد به معنی شکش هم هست مثلا الحمدلله لذی این نعمت را به ما داد که این نعمت را به ما داد همد می کنم اونجا معنی شکش هم داره اما اگر ازمت جلال بزرگی اوصاف، حسن شخصی رو بگیم حمد رو در چنارش بگیم این به معنی ستایش هست حالا در اینجا ستایش محضه الحمدلله لذی لا یبلغو مدحتهو القائلون همد و ستایش برای خدا مخصوص خدا تو بلاقت خوندید وقتی توضیح داد. مخصوص خداست دیگران مدهی همدی نباید داشته باشدم این بار خداست به اونها رسیده اما این رو بدونید لا یبلغ مدهتهو القائلون قائل کسی که حرف میزنه سخنوره کارش همده همینجا بدونه که به مدهت خداوند نخواهد رسید. با خدا طرفه. نمیتونه همد کنه. شما میتونید یه شیء مادی رو همدش کنید. شما میتونید یه شیء مادی رو مدهش کنید البته. همد در مورد جاندار مده در مورد غیر جاندار هم میتونه بیاد. اما خدا رو مطمئن باشید. هر جا برید نمیتونید به اون اصل مد خداوند برسید. مدهه فعله دیگه مساله نوعه ای نوع مده خدا کاره هیچ قائلی نیست. ال قائلون هم علفلان داره تو اصول خواهید خون که عامه همه رو دربر میگیره همه جا خیال تو راحت. پس چرا ما داریم مدت بیکنیم خدا رو؟ چون به خاطر خودمون نمیخوایم بگیم خدا یا مدت تو انجام دادیم کامل، تمام دیگه وظیفه انجام شد نه نمیتونی به خاطر خودت خدا رو مدت کن، همدم کن. حضرت این رو برای ما میگم. پس سبج زندگی ما خالی از این مناجات ها از این حمد ها و مدح ها نباشه این جنبه اخلاق برای ما خیلی گفته نش. اخلاق یعنی خوب بری خوب بیای راست بری راست بیای اینا فقط نیست قلب هم بخشی از اخلاق ماست ولا یحسینعما اهل عادون عاد اسم فاعل کسی که شمارش کنه شغلش شمارش کنه کامپیوتره حسابگره این هم نمیتونه نعمت های خدا رو احسا کنه چرا چون اگر قرار از شما خدا رو شکر کنید و حمد کنید باید بگید خدایا به خاطر این نعمتت ممنونم به خاطر اون نعمت چم تشکر میکنی به خاطر اون نعمت هم حمد می کنید خب وقتی شما اصلا نمیتونید نعمت های خدا رو بشمارید نخواهید توانست شکر او را به جا ورید. لا یحسی احسا نمیکند نعما و نعمت های او را آدون شمارشگران ناتوان هستند پس اینم دلیلی دیگر بر این که ما نخواهیم توانست حمد خدا را آن طوری که باید به جا بیاریم ولا یعدی حققه ول مجتهدون مجتهدون تلاشجر و کوشش کننده کسی که در راه خدا خستگی ناپذیر کار میکنه حضرت اینو میگه مجتهدون نخواهند توانست حق خدا را به جا بیارند تعدیه کنند حق خدا را الَّذی لا همم. ده دیگه ما تمام شد همین سر ساعت تمام کنیم اشتای الله بقیه شو فردا در محضر دوستان هستیم من توصیم به دوستان اینه که تو این ایام فرصتیست یه چند دقیه وقت بذارید همین خطبه اول نحجل بلاغه را اشتای الله یه ملاحظه بفرمایید که استفاده ما در محضر خطبه اول انشاءالله تا ما تمام باشه از همینجا سلامی ارز کنیم به محضر متحر ازت امیر المومنین علیه السلام و انشاءالله از محضر پربرکت ایشون بخوایم که ما رو توفیق بدهد به انشاءالله استفاده هرچه بیشتر از کلام این بزرگوار. از سلام علیکه یا ابل حسن از سلام علیکه یا امیر السلام و علیچه یا علی ابن ابی طالب و رحمت الله و برکاته صلوات زلفه الله ما شاء الله فنال و قال محمد تغلب الله ان الله